این داستان سفید برفی و هفت کتوله یکی بود، یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون، یکی از روزهای وسط زمستون که دانه های برف مثل پر از آسمون میریخت ملکه کنار پنجره نشسته بود و سرگرم توربافی بود قلاب بافتنیش از جنس آبنوس سیاه بود ملکه همونطور که میبافت و به درخشش برف ها نگاه میکرد، انگشت خودشو زخم کرد و سه قطره خون روی برف ها ریخت. لکه های قرمز در زمینه سفید برف اونقدر زیبا بود که ملکه فکر کرد چه خوب میشد بچه کوچکی داشتم به سفیدی برف با گونه هایی به سرخی خون و چشمانی به سیاهی آبنوس. بعد از مدتی کوتاه ملک صاحب دختری سفید رو با گونه های گلی و موهایی به رنگ سیاه آبنوسی شد که اونو سفید برفی نامید. اما موقع زایمان ملکه از دنیا رفت. وقتی سفید برفی ساله شد پادشاه همسر دیگه برگزید. اون زنی بسیار زیبا و خودپسند بود. طوری که تحمل دیدن کسی زیباتر از خودش رو نداشت. اون آینه شگفتانگیزی داشت که وقتی مقابل اون وای می میگفت ای آینه، آینه روی دیوار، چه کسی از همه زیباتر است؟ و آینه جواب می‌داد ای ملکه زیبا، در سراسر سر این سرزمین از تو زیباتر کسی نیست. سپس ملکه راضی و مطمئن از مقابل آینه کنار می‌رفت. چون اطمینان داشت که آینه جادویی حقیقت رو میگه. سالها سپری شد و سفید برفی بزرگ و بزرگتر شد. اون هرچی بزرگتر میشد زیباتر میشد. سفید برفی فقط هفت سال داشت که مردم میگفتن اون از زیبایی دست نامادریش رو از پشت میبنده. یک روز که زن مقرور سراغ آینه جادویی رفت و پرسید ای آینه! آینه روی دیوار چه کسی از من زیبا تر است؟ آینه جواب داد، ای ملکه، تو هنوز هم زیبا و دوست داشتنی هستی، اما سفید برفی هزاران بار از تو زیبا تر است. ملکه وحشت کرد و از شدت حسادت رنگش پرید. اگر در اون لحظه سفید برفی در اون نزدیکی ها بود، ملکه از شدت نفرت سیناش رو می و قلبش رو درمی آورد. حسادت مثل یک بیماری مزمن هر روز در اون شدیدتر و شدیدتر می شد. اون دیگه شب و روز آروم و قرار نداشت. سرانجام ملکه شکارچی رو که در نزدیکی جنگل زندگی می کرد احزار کرد و بهش گفت ای شکارچی، میخوام از شر این بچه خلاص بشم. اونو به جنگل ببر. اگر چیزی با خودت بیاری که نشون بده از بین رفته پاداش خیلی خوبی بهت میدم. بار دیگه قیافه این دختر رو ببینم. شکارچی دخترک رو فریب داد و به طرف جنگل برد. وقتی کاردش رو در آورد تا در قلب دختر فرو کنه دخترک التماس کنان زانو زد و گفت شکارچی عزیز خواهش می به من رحم کن من به دل جنگل پناه میبرم و هرگز به خونه بر نمی دخترک در اون حالتی که زانو زده بود و التماس می چنان معصوم به نظر می رسید که دل شکارچی به حالش سوخت. و با صدای بلند گفت ای دختر معصوم بود دو برو من نمیتونم بهت آسیبی برسونم. سفید برفی ازش تشکر کرد و چند لحظه بعد از نظر ناپدید شد. شکارچی پیش خودش فکر کرد حیوانات درنده اون رو خواهند بلعید. اما از اینکه با دست خودش دختر رو نکشته احساس آرامش و سبک بالی می کرد. شکارچی برای اینکه رضایت ملکه رو جلب کنه قلب یه بچه گوزن رو در آورد و بهش داد. زن خبیس هم فکر کرد که سفید برفی واقعا مرده فکر کرد نابود شده و این قلب همون دختره اما بیچاره دختر بیمادر که خودش رو در بین جنگل تنها میدید از اینکه دور و برش چیزی جز درخت و برگ نبود به وحشت افتاد. اون نمیدونست چیکار کنه؟ دخترک از صخره و پرتگاه ها گذشت و از وسط خارها عبور کرد حیوانات وحشی هم در اطرافش این طرف و اون طرف می رفتن. ولی بهش صدمهی نمی زدن. اون انقدر دویده بود که دیگه رمقی نداشت و پاهای کوچکش زخمی شده بودن. دخترک نزدیکی های به خانه کوچک و زیبایی رسید. اون با خوشحالی به طرف خونه رفت، در باز بود ولی هیچکس کس توشته بود. خونه کوچیک و مرتبی بود و تمیزی و آراستگی اون قابل وصف نبود. وسط اتاق میز کوچیکی قرار داشت که یه رومیزی به سفیدی برف روش انداخته بودن و برای صرف شام آماده بود. روی میز تا بشقاب کوچیک، تا قاشق، تا کارد و چنگال کوچیک و هفت لیوان دستدار چیده بودن. در اتاق هفت تخت خواب کوچک هم نزدیک همدیگه دیده میشد که روی هر کدوم از اونها یک لحاف سفید پهن شده بود بیچاره سفید برفی هم گرسنه بود هم تشنه اون کمی سبزی و کمی نون از هر بوش خورد و از هر لیوان یه قطر آب نوشید چون نمیخواست همه رو از سهم یه نفر برداره بعد چون خیلی خسته بود، تصمیم گرفت روی یکی از تخت بخوابه. ولی نمی دونست کدوم تخت رو انتخاب کنه. یکی بزرگ بود، یکی خیلی کوچیک. سفید برفی روی تک تک اونها دراز کشید و سرانجام هفتمی رو مناسب و راحت پیدا کرد. روی اون دراز کشید و چیزی نگذشت که به خوابی امیق فرو رفت. وقتی هوا کاملا تاریک شد، صاحبان خانه برگشتند. اونا هفت تا کوتوله کوچیکندام بودند که در بین ها به دنبال مواد معدنی میگشتند. وقتی به خونه اومدن هفت لامپ کوچک را رو روشن کردند و اتاق کاملا روشن شد. بعد، چون نظم و ترتیب خونشون به هم خورده بود، متوجه شدند که کسی وارد خونه شده. اولی گفت: چه کسی روی صندلی کوچک من نشسته دومی فریاد زد چه کسی از بشخاب من چیزی خورده سومی داد زد یه نفر قسمتی از نونم و خورده چهارمی گفت چه کسی سبزیای منو خورده پنجمی گفت یه نفر از چنگال من استفاده کرده شیشمی فریاد زد چه کسی با کارد من چیزی بریده هفتمی گفت یه نفر از فنجون من چیزی نوشیده، وقتی چشم کوتوله بزرگتر به تختخوابش افتاد و دید که به هم ریخته با فریاد گفت مطمئنه که کسی روی تختخوابش خوابیده بوده، بقیه هم با عجله به سمت تختخوابشون رفتن و متوجه شدند که همه تختا دست خورده است. وقتی که کوتوله هفتم به تخت خوابش نزدیک شد، چشمش به سفید برفی افتاد که روی اون به خواب امیقی فرو رفته بود. اون دیگران رو صدا زد و بقیه در حالی که چراغهاشون بالای دستشون بود اومدن و از دیدن بچهی که روی تخت خوابیده حیرت زده شدن و به همدیگه گفتند چه بچه زیبایی. همگی خوشحال شدند و اونو راحت گذاشتند تا هرقدر دلش میخواد بخوابه. صاحب تخت خواب و یکی دیگه از کتوله ها با هم روی یه تخت خوابیدن تا صبح به سر اومد. صبح که شد سفید برفی بیدار شد و از دیدن اون همه کوتوله وحشت کرد. اونها با لطف و مهربونی باهاش حرف زدند تا ترس سفید برفی از بین رفت. اونا نامش رو پرسیدن و او جواب داد من و سفید برفی صدا میزنن. یکی از اونا پرسید چطور شد که به خونه ما اومدی؟ سفید برفی همه ماجراهایی رو که براش پیش اومده بود تعریف کرد. اون گفت که چطور نامادریش اونو به همراه یک شکارچی به جنگل فرستاد و شکارچی بهش رحم کرد و اون این خونه رو پیدا کرد. کتوله ها کمی با هم صحبت کردند. بعد یکی از اونا گفت فکر میکنی بتونی بانوی کوچه که این خونه بشی؟ تخت خوابار رو مرتب کنی، آشپزی کنی، زرفا رو بشوری، کار خیاطی و روفوگری رو انجام بدی و این خونه رو تمیز و مرتب نگه داری. اگر بتونی این کارها رو انجام بدی، میتونی توی این خونه بمونی و کسی مزاحمت نمیشه. سفید برفی گفت باشه سعی میکنم. اونا اجازه دادن که سفید برفی تو خونشون بمونه. سفید برفید با اینکه سنی نداشت بسیار باهوش و زرنگ بود. او به همه کارها رسید و خونه رو تمیز و مرتب کرد و وقتی کوتوله ها برای یافتن طلا به کوه ها رفتند، شام اونها را آماده میکرد وقتی که اونها برمیگشتند خوشحال و راضی بودند. هر روز صبح که کوتوله ها از خونه بیرون می رفتند، به سفید برفی سفارش میکردند که مراقب باشه. گتوله ها می دونستن که وقتی دختر تنهاست ممکنه در خطر باشه و بهش سفارش می که هیچ وقت بیرون نره چون ممکن بود مادر ناتنیش متوجه بشه اون کجاست. اونا می گفتن هر کار دلت میخواد بکن ولی وقتی ما خونه نیستیم نگذار کسی به خونه بیاد. ملکه نابکار به که تصور میکرد سفید برفی مرده از اینکه دیگه کسی به زیبایی اون نیست احساس رضایت میکرد. اون برای اطمینان جلوی آینه میرفت و ازش میپرسید ای آینه، آینه روی دیوار، چه کسی از همه زیبا تر است؟ آینه هم برای اینکه اونو آزرده کنه جواب داد ای ملکه زیبا، در این خانه کسی به زیبایی تو نیست؟ ولی سفید برفی که بر فراز ها رها شده در کنار هفت ای که ظاهری عجیب دارند هزار بار از و زیباتره. ملکه وحشت کرد چون مطمئن بود که آینه حقیقت رو میگه. به این ترتیب شکارچی اونو فریب داده بود و سفید برفی هنوز زنده بود. ملکه نشست و فکر کرد که چار جویی کنه. اون تا زمانی که زیباترین زن اون سرزمین نمیشد نمیشد. از فرت حسادت آروم و قرار نداشت بالاخره یه فکری به سرش زد صورتش رو رنگی و موهاش رو سفید کرد و لباس ای پوشید طوری که شناخته نشه منتظر فرصتی شد و از قصر بیرون رفت او یک راست به طرف جنگل نزدیک ها رفت که هفت گتوله در اون زندگی می کردن. وقتی به کل برسید در و زد و گفت اجناس فروشی داریم اجناس فروشی قشنگ. سفید برفی وقتی اینو شنید از بین پنجره نگاه کرد و گفت مادر جون روز به چه چیزی در سبدت داری که من بخرم؟ زن جواب داد چیزای زیبایی دارم، گردم بند، موروارید، گوشواره، الانگو از همه رنگ دارم. بعد سبد رو طوری نگه داشت که ابریشم دور اون در نور بدرخشه. سفید برفی با خودش فکر کرد، فکر کنم میتونم به این پیرزن محترم اجازه بدم که بیاد تو بعیده که به من صدمه ای بزنه. با این فکر چفت تر رو باز کرد و اجازه داد پیرزن وارد بشه. سفید برفی از دیدن زیورالات زیبا خوشحال شد و چند تا از اونارو رو خرید. سفید برفی متوجه نبود که پیرزن با اون چشمای شیطانیش اونو زیر نظر داره. پیرزن گفت، بچه جون بیا اینجا تا بهت نشون بدم چطور گیره گردنبند رو میبندن. سفید برفی بدون هیچ سوه زنی مقابل پیرزن ایستاد تا اون گردنبندش رو ببنده. پیرزن هم سری گردنبند رو با فشار دور گردن سفید برفی پیچید و اونقدر فشار داد که دخترک نتونست نفس بکشه و مثل جسدی بیجان روی زمین افتاد. پیرزن به تن بیجانش نگاه کرد و گفت حالا تو واقعا زیبا هستی؟ بعد هم به نظرش اومد که صدای پای کسی رو میشنبه و به سرعت از اونجا دور شد. طولی نکشید که کتوله ها وارد خونه شدن و با دیدن جسد بی حرکت و نیمه جان سفید برفی که روی زمین افتاده بود وحشت کردند. اونها اون از روی زمین بلند کردن و دیدند که گردنبند خیلی محکم دور گردنش بسته شده. سری گردنبند رو پاره کردن و دختر شروع کرد به نفس نفس زدن. بعد از مدتی حالش بهتر شد و زندگی دوباره یافت. وقتی کوتوله ها شرح ماجرا رو شنیدند گفتند اون پیرزن عجوزه هیچکس جز نامادری بدجنس تو نبوده. سفید برفی دیگه وقتی ما نیستیم در خونه رو باز نکن. وقتی ملکه بدجنس به خونه برگشت چون فکر میکرد سفید برفی رو کشته به طرف آینه رفت و پرسید. ای آینه آینه روی دیوار چه کسی از همه زیباتر است؟ آینه جواب داد ای ملکه تو از همه زیباتر نیستی؟ سفید برفی که بر فراز کوهستان هاست هزاران بار است و زیباتر است. وقتی ملکه این جواب رو شنید حراسان شد و خون در رکاش به جوش اومد. چون بعد از اون همه زحمت و درد سر سفید برفی هنوز زنده بود. اون با خودش گفت برای اینکه از شر این بچه نفرت انگیز خلاص بشم باید فکر دیگهی بکنم. ملکه بدزاد به کار جادوگری هم وارد بود. اون شونه ای رو به زهری آغشته کرد که هر کسی ازش استفاده میکرد مرگش حتمی بود. بعد زود دست به بکار شد و لباس زنان پیر رو به تنگ کرد. البته خودش رو به شکلی درآورد آورد که با دفع قبل فرق داشت. بعد راهی کوهستان شد تا به کلبه کتوله ها رسید. سفید برفی صدای پیرزن رو شنید که فریاد میزد، اجناس فروشی قشنگ دارم. سفید برفی از پنجره به بیرون نگاه کرد و گفت: برو گم شو، از اینجا برو گم شو، برو از اینجا دور شو، نباید اجازه بدم وارد خونه بشی. پیرزن گفت: اینو نگاه کن، اگه خوشت اومد اونو بهت میدم. پیرزن شانه لاکی درخشان رو که به زهر آغشته کرده بود مقابل چشمای دخترک گرفت. تفلکی سفید برفی نمیتونست از همچین هدیه‌ای چشم پوشی کنه. اون تذکر کتوله ها رو از یاد برد و در رو باز کرد و اجازه داد پیرزن داخل بشه. بعد از اینکه سفید برفی مقداری خرید کرد پیرزن گفت بزار با این شونه گیسو رو مرتب کنم این شونه گیسوهای تو رو زیبا و شفاف میکنه. سفید برفی بدون هیچ تردیدی جلوی زن ایستاد و گذاشت که اون موهاش رو شونه کنه همین که شونه به ریشه های موش خورد زهر تاثیر خودش رو گذاشت و دخترک نقش بر زمین شد زن بدجنس گفت ای تو مظهر زیبایی همه چیز اونطور که من میخواستم شد اینو گفت و سریع از اونجا دور شد خوشبختانه هفت کتوله اون شب زود به خونه برگشتن اونا وقتی دیدن سفید برفی مثل مرده روی زمین افتاده فهمیدند که بار دیگه مادر ناتنی به سراغش اومده اونها شونه زهرالودو در بین موهای دختر دیدند و اونو بیرون کشیدند. سفید برفی کم کم به هوش اومد و اون چرا که اتفاق افتاده بود شهر داد. اونا دوباره به سفید برفی گوش زد کردن که وقتی تنهاست به هیچ وجه در خونه رو روی کسی باز نکنه. اما اون نمیتونست در مقابل مادر ناتنی بجنس خودش مقاومت کنه و خیلی زود سفارش کوتوله ها رو از یاد می برد. ملکه بدزاد دیگه مطمئن بود که سفید برفی رو نیست کرده اون همین که به خونه رسید به سراغ آینه رفت و پرسید ای آینه، آینه روی دیوار، چه کسی از همه زیباتر است؟ آینه پاسخ داد ملکه، تو از همه زیباتر نیستی سفید برفی که بر فراز کوهستان هاست، هزاران بار از تو زیباتر است با جواب آینه، ملکه از خشم بلرزه در اومد و فریاد زد حتی اگه به قیمت جونم تموم بشه، سفید برفی رو نابود میکنم کنم اون با این تصمیم به یکی از اتاقهای ممنوع قصر رفت که هیچکس اجازه ورود به اونو نداشت او در اونجا یک سیب زیبا رو زهرالود کرد سیب به ظاهر رسیده سرخ و وسوس انگیز بود طوری که هر کسی اونو می دید آب از دهانش را میافتاد ولی فقط یک گاز از اون کافی بود که آدمو از بین ببره به محض اینکه سیب آماده شد ملکه بجننس صورت و موهاش رو رنگ کرد لباس زنان روستایی رو پوشید و به طرف کوهستان و خانه کوتوله ها راه افتاد. وقتی در زد سفید برفی از پنجره سرک کشید و گفت: جرأت نمی کنم اجازه بدم وارد خونه بشی. هفت کوتوله منو از این کار من کردن. زن روستایی گفت: باشه تو همونجا باش. من سیب هام رو به تو نشون میدم. به نظر تو سیب های قشنگی نیستن. میخوای یکی از اونها رو بهت بدم. سفید برفی فریاد زد. نه موچکلم جرعت نمی کنم اونو بردارم. زن با صدای بلند گفت. لابد میترسی مسموم باشه. نگاه کن من این سیب رو نصف می کنم. قسمت سرخ اونو به تو میدم و خودم قسمت دیگرش رو میخورم. اون با زرنگی فقط قسمت سرخ سیب رو مسموم کرده بود سفید برفی که از اون میوه زیبا خوشش اومده بود وقتی دید زن روستایی نصف اون رو خورد دیگه نتونست مقاومت کنه دستش رو از پنجره بیرون آورد و نیمه سمی سیب رو گرفت اما همین که یک گاز از سیب خورد نقش بر زمین شد ملکه بدزاد از اون طرف پنجره دید که چه اتفاقی افتاده قاه قاه قندید و فریاد زد سفید مثل برف سرخ چون خون سیاه چون آبنوس اما این بار کوتوله ها هر کاری هم بکنن دیگه نمیتونن تو رو از خواب ابدی بیدار کنن به محض اینکه ملکه به خونه برگشت به سراغ آینه رفت و پرسید چه کسی از همه زیبا تر است آینه پاسخ داد ای ملکه ی زیبا در سراسر این سرزمین از تو زیباتر کسی نیست. قلب سرشار از حسادت ملکه آروم گرفت. البته فقط تو اندازهی که قلبی پر از کینه و بدخواهی میتونه آروم بشه. وقتی کتوله ها به خونه برگشتن سفید برفی بیچاره رو دیدن که روی زمین افتاده. اونها سفید برفی رو از روی زمین بلند کردن ولی هرچه کردن نتیجه نداشت. اون واقعا مرده بود. با این همه باز هم سعیشون کردند، کردن. کوشیدن، زهر رو از لبهاش پاک کردن. سرش رو شونه زدن، موهاش رو شستن. ولی همه این کارها بینتیجه بود. سرانجام کتوله ها قانه شدن که اون واقعا مرده. هفت کتوله اونو داخل یک تابوت خوابوندن دور اون حلقه زدن و سه شبانه روز گریه کردن. اونا میتونستن سفید برفی رو دفن کنن اما شکل ظاهری اون تغییری نکرده بود. صورتش زنده و با تراوت به نظر می رسید. لب و گونه هاش هم رنگ عادی خودش رو حفظ کرده بود. یکی از کتوله ها گفت ما نمیتونیم این بچه به این زیبایی رو به خاک سرد بسپاریم. بالاخره کتوله ها توافق کردند که برای سفید برفی تابوتی از شیشه درست کنن تا داخل اون از هر طرف پیدا باشه و اونها بتونن هر روز مواظبه نشانه‌های پوسیدن و متلاش شدن اون باشن. روی در تابوت با حروفی نام طلایی سفید برفی رو حک کردند. و نوشتند که او دختر یک پادشاه بوده. تابوت را در دامنه کوه گذاشتند و هر کدام به نوبت در کنار اون کیشک می‌دادند، طوری که تابوت هیچ وقت تنها نبود. مرغان هوا هم دلشون برای سفید سفیدبرفی میسوخت. اونها هم به نوبت میآمدن و کنار تابوت گریه زاری اول جغد بعد کلاق و دست آخر کبوتَر. جسد سفید برفی مدتی طولانی در تابوت شیشه ای موند هیچ نشانی از پوسیدگی در اون دیده نمیشد انگار به خواب طبیعی فرو رفته باشه پوستش همچنان به سفیدی برف بود گونه هاش گل انداخته بودن و موهاش به سیاهی آبنوس باقی مونده بود دست بر غذا ای سوار بر اسب از جنگل عبور میکرد شب که شد، اون به خونه کوتوله ها رسید و از اونها خواست پناهگاهی بهش بدن. صبح روز بعد، وقتی شاه ساده خونه رو ترک کرد، در دامنه کوه چشمش به تابوتی شیشهای خورد که دختر زیبایی در اون دراز کشیده بود. و حرف طلایی روی تابوت را رو هم خوند. او برگشت و به کوتوله ها گفت: هرچی بخواین به شما میدم که اجازه بدین این تابوت از آن من باشه. کتوله ای که از همه مسنتر بود گفت در ازای همه تلاهای دنیا هم حاضر نیستیم این تابوتو به شما بدیم. شاهزاده گفت پس نه به خاطر پول بلکه اونو به عنوان هدیه به من بدین. زیبایی اون دختر چنان تاثیری در من گذاشته که احساس میکنم بدون اون نمیتونم زندگی کنم. اگه اونو در اختیار من بذارین، با عزت و احترامی که شایسته یک شاهزاده هست ازش نگهداری می کنم. وقتی شاهزاده اینو گفت، کتوله ها دلشون سوخت و بالاخره تابوت رو بهش هدیه دادن. شاهزاده هم خدمتکارای خودش رو صدا کرد، تابوت رو روی های اونها قرار داد و با نظارت و مراقبت شاهزاده را از اونجا دور کردند. برحسب تصادف یکی از خدمتکاران سکندری خورد و به زمین افتاد. همین باعث شد که تابوت محکم تکون بخوره و با اولین ضربه سمی که سفید برفی خورده بود از دهانش بیرون ریخت. چند لحظه بعد ناگهان سفید برفی چشماش رو باز کرد. در تابوت رو باز کرد و از جاش بلند شد. اون وقتی موقعیت رو دید فریاد زد من کجا میبرین؟ شاهزاده با خوشحالی به تابوت نزدیک شد و گفت سفید برفی عزیز، تو در امن و امان و در پناه من هستی. سپس شاهزاده اون چرا که اتفاق افتاده بود و اون چرا در باره سفید برفی از زبان کتوله ها شنیده بود برای اون شهر داد و اضافه کرد. سفید برفی عزیز، من تو را از هر چه توی دنیا هست بیشتر دوست دارم. تو باید همراه من به قصر پدرم بیای و همسر من بشی. سفید برفی از تابوت بیرون اومد و در کالسکه نشست تا در کنار شاهزاده به سفرش ادامه بده. وقتی پادشاه سفید برفی رو دید از انتخاب پسرش خوشحال شد و طولی نکشید که جشنی با شکوه راه افتاد و شاهزاده با سفید برفی ازدواج کرد. اتفاقاً مادر ناتنی هم به مراسم عروسی دعوت شده بود. او که لباسی فاخر به تنگ کرده بود پیش از آنکه قصر خودش رو برای شرکت در عروسی ترک کنه به سراغ آینه جادویی رفت تا از زبان او تعریف زیبایی خودش رو بشنوه. ولی با کمال تعجب این بار آینه گفت ای ملکه تو از همه زیباتر نیستی اکنون عروسی وجود دارد که هزاران بار از تو زیباتر است. زن بدجنس سخت ناراحت شد و نفری نسار اون عروس کرد. اون نمیدونست چی کار باید بکنه. اول تصمیم گرفت به مراسم عروسی پا نذاره ولی از فرط بیقراری تصمیم خودش رو عوض کرد. اون چه بر تعجب و رنجش افسوده میشد این بود که عروس جوان و زیبا همون سفید برفی بود که دیگه زنی جوان و جذاب شده بود. و در لباس زیبای سلطنتی می درخشید. ترس و خشم مادر ناتنی به حدی بود که لحظاتی میخکوب و بی حرکت ایستاد. بعد به طرف سالن عروسی رفت. ولی کفشهایش مانند کفشی آنهنین و پر از آتش به پایش چسبیده بود. او با همون وضعیت رقص را شروع کرد و مدتها رقصید تا دیگه رمقی براش باقی نموند. ناگهان نقش بر زمین شد و مرد مرگ غمانگیز او ناشی از رشک و حسادت بسیار بود